کسی به خدا امید نداشته باشه کارها رو به خدا و تقدیر الهی نسپره چه کم چه زیادش یه یعصی از خدا داره یکی از گناهان خیلی شدید و خیلی بد برای شخص مؤمن و خیلی پر مكافات یعص ان روه الله هست از خدا انسان قافل بشه و معیوس بشه میگه دیگه اینو ظاهرا میشه که خدا نبخشه این کار رو یا این برنامه دیگه شاید خدا در اشتخالتی نداشته این مثلا صدمهی که به من خورده عزیزی از دست رفته مکافاتی که مثلا تو زندگی به این شده میسته که اینجا دیگه خدا ناظران نمیتونسه مانع بشه این نسبت ها رو به خدا دادن در عمل جوری در مقابل مصیبت ها فقدان عزیزان یا فقدان یه مالی زندگیش مثلا صدمه میبینه تجارتش ورشکستگی خدا اینا کرده ایجاد میشه دیگه از خدا کنه بی جورایی در عمل نشون میده که معیوسه این در هر شکلیش باشه چی کم باشه چه زیاد باشه گناه بزرگه انسان باید این باور داشته باشه اگر این پول الان رفته شاید بعداً به شکل دیگه ای جور بشه اگر عزیزی رو از دست داده و در فقدانش ناراحت هست میسوزه یقین داشته باشه که بلاخره بعد از مدتی او هم مپارغت میکنه از این دنیا به عزیزش میفیونده اینجور نیست که او رفته باشه و دیکی نشه زیارتش کرد نشه دیدش نشه باش بود در بین اطرافیان کسانش جوری برخورد کنه که همه زندگی براشون تلخ بشه خودش همسرش فرزندانش اطرافیانش همسایگان و اونایی که معاشرت دارن اینها نشون دهنده این هستش که از خدا انسان قاپل شده قفلت از خدا اگر به یأس از عنایت خدا برسه گناهه دیگه نمیشه گفت گناه کبیره است یا صغیره است گناه دیگه جرمه و عواقب داره باعث کمترین عواقبش این هستش که شکر رو به جا نمیاره وقتی شکر به جا نیاد، مهمت افسون نمیشه. رحمت مسدود میشه. خداوند سنتش برین هست. اگر کسی معیوس شد، رحمتشو برمیداره.